بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربان مهربانه لی ایلاد با سبب الفت قریش ایلاد هم رحلت الشتاق و الفت, الفت انها در سفرهاوی زمستانی با سابستانی بل بَهَادَ الْزَيْفِ پس با جد فرورتگار این خانه را عبادت کنند الَّذِي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دانت که آنها را از گرستگی نجات داد و اصنا امنی به هاوی بخشید